بنشیمین به به بنشیم به به می او و من و بعد من و, بی بی من در و من خونه ما جل شود خولی و ما دشمن شود خولیا ما و اوا ما اكبروا واو سواليني اصغر ماوا قاهروا ما اكبروا واو سواليني اصغر من, من ود جمله یا آران ن در سفر ح کره با بلا ها جمله یا آقاران حهنگ در سفر کره بابللا ترره به کت جان بره دین خدا و خو چوب خواهر نون خواهر او هم خونه شدگی به بی بیا گا قاهرم كون شگي بي دل به ديا بانه دغا لهرجو څنګه و با هر با پرا ها خوب خوب که موده دیله با باوا و نهره توآاز آم میزد خواهرم و تا که چه هاها و خادد ش خواهر رو مووج و خنده با بوار رانش وهزار ر موج تو و عنده با باار غش بیایم او و خدا و و چون چه شهدا، و چون چه شهدا، و و و مرون بعد مرون. و ما چون ای, و ای چو چلب با آمد دید با نهر سرا واسای زل ز خوب لجا رفت تا چه ها و خان موج تو کند و ور رنگ چه موج تو کند به ور رنگ ی ربی و خدا و چون چه شهدا شهدا تا تو و, و, بگمت و خود شود هر هر ما و الای جو زباں و جمانه ما و قصه موان بعد موان موان با و ما ما و ما و ما و و و قاهران و و فنا و چه به همورین ای و ک ننفسستنو ونیت بینیم می و همهه صبر رو نهماوا و خاده ش سواهر مول هله بهوی خ همهدعرد مرینگ پدعور میگر و مکل اون تو را هم و تر نها با جانفری شان دینان بن شاد و دشمن ما خواند شو مغد و سحر چون چه شهدا چون و سَيَمَا بهسه ماوا بعض ما خواهر مووض باززان ماوا و بهسه ماوا چه زبه و مات سپهوه و خود و شاز خواهربلند چون چه بر می خونه حسین وقتی بینی خواهر اولخبرونماوا اون ظلووم و فناوا اود و فنا و اهل هم بامواره نیست و رو کنافوسن و یه نشینیم که هر آمی صبرنا ماوک و نهلبی و خوا <تصفيق> و چه با با و چه موج تو رانچ موج تو رانچ شیر خدا چ خو ولای شهدا خشم اده بو راه بندا تا و کو چوبې یې او قواد شوقت طاهر من و و قهرنا و نه بوزو زبان ما چوباو این دا جماع ما قاهر ما و قصه ما گفت سی ما دا جماع ما و چون ما ما گفت ما و و حال ابا و خواهد شوط قاهر ما چون که بروت سر خو خون حسين مدینی خواهر اوم و نمو و او خواهر و